مزین و آله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الله اللہ علی سیدنا رسول الله و آل طایبین و معصومین و درست دارمت و مجمعین اللهم افقنا و جمیع المشتغلین و حمدنا یا ارحمالله این <تصفيق> اصولی بحثه در مقاسب و جب به قوائد این هاست که حالا ما بعضی از چه این مناسبت غدم و قش از می خوام بونوزو درش متعرض دیگه ان شاء الله بحثه وقتی یه این رو را که در بابه بطران که اینان سر رسیدن کردن انقدام هر دو بطران مطلق و متناسی انصاف شاید از بحثه موارد ما حالا من شو یه نظر تصوفی هست به بوصفی این موارد خاطیقات شما توفر تو فکر می اینه بحث محرد. بعید نیست. مثلا ما به برایت داریم لا تلاق الا لمن یورید التلاق لا تلاق لمن لم یورید التلاق هست. این لا تلاق بگیم اینا یعنی مراد این ازام مطلقه از تفسیر رو که اینشون نرم کنه از قوانین قرآن در این ازام مطلق یعنی اصلا تعاوضی نیست بطلان مطلق تعاوض هست شرائط رکمی تا آقود نسوی هم باط بطلان نسوی هم اونجایی که مثلا ما در باب نف... طلاق دو جور بطلان پاهر بشیم مثلا لا طلاق لمن, ير... لمن لم یرد طلاق یا لا طلاق لا لمن عراض طلاق شاید نظر امام این باشه که در جایی که اراده نیست اصلا طلاق نیست اما مثلا آیه مبارکه یا ایوه النبی این خیلی مبارسه لطیفی این آسان نیست که الان در دود کرد من در از مکنم در محل خودش یا ایوه النبی یا ادا طلقتمون نسا ادا طلقتمون نسا فطلقوهن لعزت هن خوب دقیق کنیم بگیم این ناظره به شرطه یعنی ما شبیه این بحثی که در این قوانین وضعی و مدنی اروپا هم بود، یعنی در فرانسیشو نقل کرده و این تقسیم سلاسی که گاهی انعدام عقد، گاهی بطلان مطلق، گاهی بطلان نسبیه. بطلان اسمو خیاب خیال رسانی بطلان است. بخاطرش بگیم این تعبیر شاید در روایات ما هم ناظر به همین باشه. که اگر شما اراده یه طلاق ندارید اصلا این طلاق منعظمه نه اینکه باطله نیست اصلا طلاقی نیست لا طلاق ده من لمیارده طلاق خیلی لطیف این معنا مثلا لا اقلاقی ما یملک اگر شما مالک نیستی اصلا اقلی نیست اما مثلا آیه مبارکه یا ایوان نبی اذا طلقتمون نسا فطلقوهن لعدت اند بگیم این محناشی نیست که شما اگر طلاق فی غیر ادت, ادت, ادت هنده دارید طلاق نیست طلاق هر شرطش نیست خیلی ما بگیم همون حرکتی رو که در بیازدم بگیم در حقیقت من اصلا سرم اوز اگر باشه در حقیقت اون روز گفتم که این احتمالا مطالبشون رو چون خب شما عمده هر بای کنازاره از دوران رونسانسه که عمده تأثیرش هم به جنگ های سلیبی بعد جنگ های سلیبی عمده راه انتقال مطالبی که در شرق بود در علوم مختلف نهی که در فرق و قانون اینها حتی در مطالبی مثل فیزیک و شیمی و نجوم و فلسط و کارهایی که شرقی ها انجام داده بودند این بعد جنگ های سلیبی به اروپا ها شد. من ارشیدم الان موجود در این کتابخانه پاشا هستم. یه نسخه از کتاب قانون شکوه‌رئیس هست، دو جدیه یکیش من دیدم شاید دومش میگن این دومین کتاب در اروپا چاپ شده عربی ها و خود گوتندر چاپ کرده. از اون وقتی که چاپ با به چیز بود با چوب بود. خیلی نسخه نفیسیه می یا حدود 1455 میلادی یکی از دو تا رو من درست اون آقا خود ارزششون از کتابونه میگه این از این کتاب های خطی هم نفیس‌تره با اینکه چاپیه معروفه اینه که روشن در که بوتبر وقتی چاپ اختراع میکنه اول کتاب مقدسش چاپ میکنه بعد این کتاب شه قرائت ابن سینا و اینی که من دیدم به عربی هم هست نسخه‌ای که من دیدم خود نسخه اصلی ابن محن عربی مرد اصلی من که بعدها ترجمه شد برد این که این علوم بیشتر بعد از جنگ های صلیبی متقف شد احتمال میدیم چون متاسفانه در که این اصطلاحات ما این ذرافت ها اما مثلا در اصطلاح شیعه لا طلاق لمن, لمن لمن لمن لمن طلاق رو میدید طلاقش باطله اگر شرط طلاقم نباشه باطل شاید همین ذرافتی که بعدها هدها نقصی ذرافت ده لا طلاق چون لالای نتیجه ایسا شاید اشاره به این باشه که این امه باطل نیست منهدم اصلا وقتی شما اراضه نداشتی اصلا نیست لا طلاقم ظاهرش اینه که ما باشیم انصافا شاید بتونیم چون از که من واضح چون جایش اینجا نیست خودی خیلی‌ها انکار می‌کنه که لنین نظریه ثلاثی عرض بطلان رو قبول دو سا بطلان و غنوان قبول دارن دو تا بیشتر نمی‌دونن غنوان مطلق غنوان نسبی سررس نمی‌دونن اما بعید نیست که ما این, این مبحث رو حتی از روایات خود ما هم در بیاریم. مثلا لا به الا ما یوم این شاید من توضیهش کنم یه بحثی بود برای اینکه مثلا یه فردی خانم نگیره من با مثال می کنم بگم یا مثلا بدی که من به هیچ وقتی نه یا مدر میگفت می که این اگر زن من هم بشه طالق طلاقه مثلا زنش نشده هم بس اینجوری بود هنوز زن آقا نشده هر از این که زنش بشه میگفت اگر زن من بشه طالق وقتی گفتن تا ازدواج کنه به موجود ازدواج طلاق زاده میشه صحبت این بود که این طلاق درست یا نه این لا طلاق الا في نکاح مرادش این بود در روایت ما هم ده که نه باطل خب چرا در مسئله چی میگه طلاق چه این شانه ت رو به قصد بکنید بیاین در اینجا ندیم طلاق باطل بیاین در اینجا بگیم طلاق منعقد نمی شه درست لا ادری الا في ما یملت دقیقاً چی شد مثلا میومن میگن اگر من مالک ابن عبد بشم آزاد بشه سوال این بود سوال کسی گفت اگر من مالک این عبد بشم آزاد بشه بعد خرید اون عبد رو آیا به مجرد خریدن آزاد میشه سخانه در روایات ما آمد لا اخل الا ما يملك این اخل نیست اصلا تو, تو مالک این شخص نبودی تو بدون ملک چطور می‌خوای آزادش می‌کنی اذه از, از سنت این توضیحا در بحث طلاق دینی که جایی نیست میگفتن این طلاق درسته هنوز ادعا نکرد گفت هر یاری این خانم در منع شد مطلقه طلاق سروقت دیگه هیچ هر موضوعی از دانش بود در روایت معاملات این طلاق باطله چرا چون طلاق متوفی هست بر نکاح نکانی شده روز لا ادخلو گفتش فکر بکنید این حالا که تفسیر رو آوردی احتمال داره که مراد امام این باشی که اصلا اینجا منعدمه نه باطله تا له با ما باطل معنا کرده تبیه این تصور نه این باطله. این باطله یه دیگه مثلا این ملعقب نیست انعقادی پیدا نکرده این پیدا نشده پس اگر فرموز ازا تلقص و نصافت ازا تلقوه و نلعه ازت اینه اون شرطه اونجا باطله اما اگر گفت اونجا این ادامه نه اینکه باطله دیگه در روایات ما هم با این که حالا مثلا اینطور طور معروفه که مثلا در اسلام چون قوانی در مکه و مدینه نبوده تعاویر قرآنی و تعاویر سنت پیغنبر و حتی بعضا تا تعاویر اینا تعاویر قانونی نیستن باید دلوازه میشونه ایناش اخت بکنیم مثلا در روم قدیم قانون بود اونا تعاویر قانونی هستن اما اینا تعاویر تعاویر قانونی نیستن بگی نه معروف شد که ما, ما یکم بکنم ترجعی کردیم اون جایی که لا ادغ لا طلاق اونجا این ادام مراد اون جایی که میگه طلقوا من لذتهم مثلا علنای صلات به زروق شمس شما اگر قبل از نماز قبل از وقت نماز خوندید نماز هست اما باطله چون شرطش رو رعایت نکرد اما اگه گفت لا صلات لمندمی از تقوی قبل اون اصلا مرادش اینه که منحزم نه اینکه باطله واسه بطلان اونجا نیست تو حقیقت نماز رو کردن و هست. حتی نماز به قبله است. نماز نیست. این برعکس اون نه دیدن بود. من من عمیقاً ندونم برعکس من اولا بدون به اشکال نداره که مواد استعمال اهمی هم نباشه میگیم با غرض اینجوری اون شده. مشکل نداره، حل میشه. راههای بقول ما نواص ما باوری کش و میشه که بدون ارزش مشکل نداره. پس بگیم یک چیزهایی با عنوان شرط یه چیزهایی برگشتش به انعدام همین تقسیم ثلاثی این تقسیم ثلاثی رو بگیم این ریشه داره در تفکرات ما در روایات ما در ادله شرعیه این خوب نیست که ریشه نداشته باشه و تعابیر ما الان اینطور روشن بشه اصلا طلاق نیست نه اینکه باطله خوب دقت بکنید شما هنوز با این خانم ازدواج نکردید میگید اگر با این خانم ازدواجش کنم، یه مطلقه. مثلا مثلا بگن که من به هیچ با این ازدواج نمی‌کنم. بعد یی می‌یان علی اینو اگر من با این خانم ازدواجش کنم، یه مطلقه از ازدواج دارمشون مثلا درسته، تا ازدواجت مطلقه میشه، ثلاثاً نمی‌شه. در روایات ما که میشه. هم که نمی‌شه، هیچ چیزی اون نه که طلاق میشه، طلاق چی رو یعنی وجود نداره. نکاحی نبوده، چطور طلاق لذا شاید مخواد این روایت همون ام ادام باشه نه بطلا اما تلقوهنه لعدت اینه ارز کلم هایی مبارکه تلقوهنه لعدت اینه مراد اینه که شما وقتی میخوایید زن رو طلاق بدیم یک جوری طلاق بدیم که زن بعد از طلاق مشغول اده بشه اصطلاحش این معناهش اینه این شاید طالب کنیم اینم معناه رو کنم و از اون برم چون اده خواست قروع بوده و یه تقریبا اتفاقی است نشون دارن مخاله که مراد طهره پس عده طهره دقت کنید عده نیست عده طهره طلبوران له عده فهنده یعنی تا طلاق دادن عده شروع, شروع بکنه و اگر در حال هیج طلاقونه چون هیج عده نیست باید صبر بکنه تا هیجش تمام بشه شروع کنه به عده میگن که طلاق ظاهر آید این ما بود خوشو دنیا با این که میگن طلاق ایبا... یعنی عده عبارت از مسئله توهره میگن اشکال نداره میشه در حیث هم طلاق بوده طلاق سریع در روایات ما آنه که این طلاق باطله تمسطو که بگیم آیه خوده من بسید تمسطو که با آیه رو براتون کنم توضیح اجمالی بدم تحصیل یعنی وقتی طلاق میدین زن از همون لحظه بارد عده بشه اما اگر در حالات حیث بود بلزا در روایات ما هم داره تو متعه این شرط نیست چون تو متعه طلاق نداره تو عقد منقضه طلاق بلزا ممکنه که یه خانمی مدت حملش در باب متعه تمام بشه در هیضم باشه بازم درست تمام بشه در هم هی باشه هیضم که عدل حساب میشه اون هی ده حساب نمیشه حالا شاید به بعد بشه اونه از تعاریفشون حساب پیدا که مشهور نیست اون حساب نمیشه تو بند <تصفيق> یا بزن مدت در اینام حیث ماشه اون نقطه در روایت باز که این اشکال نبود اون طلب بخونه لدهت نگه نیجا نبود شد طلاق مهم بگیم یا بزن یا ازدار مدت هیچ کسی کسی طلاق نیست دقیقه فهمدی فتل... اما اهل سلمت رویان نهارا طلاق درست در حیثم باشی درسته غایت ما همه از اول احتساب قرق رو یا طب رو بعد از تمام شدن این حیز می در رد ما اهل به فقه ما نخیروا طلاق در یعنی وقتی طلاق داده شد، مباشرتن بعد از طلاق اذری شروع بکنه. این معناش اینه که نباید تو صورت باشه، ولا حتما تو طهر باشه. اون وقت احتدام سر این بود. اونا می این نه یا حرق به عده حنه موجب بطلان نیست. به این بود. ما اول این مطلب توضیح دادیم. یه از مفصل و از تو تو سنیا ادهشون مثل ما بایده اما مشهور اهل سنت نه یعنی باطن نیست درسته از وقتی بروشن طلاقش حرامه کار بدی کرده طلاق در غیر اده داده اما طلاق درسته طبیل هاته من طلاق رو بردرس کنم ما چون راجع به بحث تدریض و قشت در دوانین مدنی معاصر یه بحثی چون این به درد کار ما میخوره. فرق بین قش یا تدریس حالا بین دوستان فرق هستیانه با مسئله قرد قرد از که در این که معاملات به اصطلاح دو طرف متوازن نباشن مثلا کتابی که قیمت شزارتوانه به ده هزارتوانه متوازن نباشن این اصطلاح هم قرد یه یه مقدارم راجب قرد از این عبارت کتاب نظریت العقل سنوری دخونیم ولی اینکه ذهن رو آماده بکن بعد واضح تدلیس بشیم و بحثه ای که ایشون راجع به تدلیس دارم ایشون در این سفیه چارترش شما نسخهی که, که من دارم ایشون داره که در قانون مدن آمان قرن در قانون مصری نص صریعی در قرن از کنم ایشون چون قانون مصری ایشون برسی کرده دو تا نسخه قانون مصری ایشون به لغت فرانسوی بوده یکی به عربی بوده هر دوشم از قانون مدنی فرانسه گرفته شده از این جهت وارد شده از قدمی اشکال کار این من نه به قانون مدنی مصر و که احتمالی که من در حد تخصص تخصص ندارم در حد احتمال که شاید کسانی که قانون مدنی مصر نرشتن تأثور اسلامی هم داشتن باشه. و در دنیای اسلام قرم موجب خیار نمیشه. ولو قبلن پاکش باشه موجه بخیار نیست که من الان توضیحاتش احرزم کنم بعد ایشون ایشون میگید در باب به مازدهی جاره شمایه مازدهی شده شده مازده بنده کلا و مازده کلا شمایه کلا و کلا لعنال قبلن از زال لعن خمس سمنل ال اغار المبین البته ایشون ایشتر قبل رو برده بوی زمین فروش زمین نه کفا بوینا تو... خود این که یه توضیحی داده منم یه توضیحی بیشتری رو برعرض میکنم که این چه رو برسته هم قبل رو فقط بو خصوص زمین بله نه رویسه کلم که به کس باشه برای زمینه اقار هم داریم اقار هم داریم اقار یعنی به اصلاح دارو علیه اقاقی رو کشنده باشیم وغار امن شراب في سمن. باید, باید میتونه حق داره که تکمله ثمن بکنه ولی اینکه خیلی عجیبه به نظر ما در واقعا فقط ما بین امرین یا امضاء یا هر게 و یکون که في حاله بی بیع علم اص... بیع اقار بسر فقط زمین افرادی رو که بچه یا کودک هم یا فرمیم مثلا مجنز بفروشه در اینجا خیلی معلومه که در قانون مصری اینطور که ایش رو نمیترد شون من پاشنای نذارم ای چیز تو هاشی آورده چی فلان از قاهره و غیر آورده شونها شو بایش نمیفرمونیم بزایی چیچی نقضه میکنم به اینجا بله بعد از قانون فرانسه هم آورده در ماده فلان به هم فرانسه ماده و فلا باز از یک ماده بعدی مجرد القبن حق في كل عقوده اما اگر قاصل باشه باشه و باشه ف یبتلالعقود <تصفيق> التی تجاوز حدود اهلیه، احلیتی المبین فی باب القص و رسایه بیشتر بردن روی قاصرین، با اینکه مسئله قبل و آقل هم هایت کتاب روزه ده هزارتون باز ماده شماره فلان بله که نوشته که این سه تا ماده از بانه پرامسریشون نرم میکنه که از کدام بعدم در حاشی باید چند تا مانده قانونی دیگری ای که بیدی نگاه بکنه که در این مطلب محسن این اجمال دو تا قانونی که ایشون از قانون مصر و از قانون فراسی بعد حالا نتیجه نایی فلقه نکمه نرامنه نصوصه متقدمه اینطور که دیدین لیست لهو فلقانونه از مصری و کرنسی نظریتون جامعه بعدم میشه که حد به روشنی در این دوتا قانون نداشت کما تو جدهاز نظریه پی عیوب رضا علیه لذا لذالکه احسان و بعد باید توی بحث قبل وارد بشین که توزیه بازه میشه تا میدید چرا این دوتا قانون خیلی واضح نیست ده بعد تعریفی رو از غم میده دیگم این مطالعه خیلی و روح مفیده برای برگرین به بحث خودمون که اینکه میشه ایشون تعریفی رو از قرم میگه ایشون بگه که تعریف رو قرم قرم اینجور باشه قدم و تازول و تازول بین دو طرف معامله نداشت به قدم تازول بین ما یعطیح الاغذ و بین ما یع خود رو. چون هر دو آغذ میدید شما دیگه یه چیز میدن یه چیز میگیم این کتاب میده در از آسان میگیر اون ده میدهن، کتاب میگی اگر بین این دو تا این این دو طرح. تا آدال نبود اینو قبل میگی ایشون تفسیرش اینو لذا اگر قیمتش کتاب پنجه هزار بود ده هزار داد این که اگر قیمت کتاب هزار بود ده هزار داد اون ای که مقلومه اوندش اون عدم تا آداله نقطه واقع قبل بله ولذا ایشون میگه که و منحال از حریفی خیلی راه قانونی و اغلایی لطیفی رو رفته و منحالا به تعریفی اون که استخلاص ملاحظات سرا سه نقطه رو ما در باقی قرد در نظر بگیریم. یک اولا قرد قبود معاوضه در غیرش نیست که لطیف این مطلب لطیفی است مطلبی رو که ایشون گفته که قرد فقط در قبود معاوضه هست و در غیر آبود معاوضه دیگه مسئله قاب پیدا نمیشه این یک مطلب مطلب زیادی که ایشون داره مخلوع فصل اول الاب شی آبود معاوضه این اولش ایشون نداره لی اما آبود ایشون در مقابل آبود معاوضه آبود تبرو رو است مثل هدیه یه آماده ازش میاد مادرم میه وش دهه میگم تو اون هدیه داره و بعد نه آدم بدتری لباسی پوشیده خودش ارائه کرده. این بشه اگه او خواهیم سر چند سر من کلا رفته آیا این, کرده این قرن موجب بیده میشین میشونم حدیر بیدنه اگه پس آراد کده باشه نیمیشون این هم هر درستیه که عصوبا قرن باید تو اهود معاوضه باشه درکه در مقابل محابل اهود معاوضه اهود تبرع رو برده لافی اهود تبرع درم اهود تبرع یو قطیقی ها احد المتعاخده ولا یعخوز بگه ما من سرم کلا رفتان های محلی در میگونه دادن که شبا گردم شم... شکلیش اول کرد بود خیال کردم که مثلا شهنشی نه الان من که نه بی خود این کلومو بی, خوده بی خوده خوده خود بی بیناها دادیم ولا یعخوز خلا این یه نکته ایشان گفته خوب دقت بکنید البته ایشان خیلی در اینجا جا توضیح بیشتری ندازه یه توضیح هم در حاشیه داده که اینم خیلی لکیفه این خوب دقت بکنیم این محلوب. این رو به اسطلاح ایشون توضیح میده در هاشیه پس یک عقود تبرق خارجه من مخام این توضیحاتی ایشون رو مرده وذیف بدن یک نکته دیگه هم در حاشیه داره میگه اگر عقد عقد معاوضه باشه دقیقاً کلی بحثه اوغلیسون تو روپیه ما هم هستی یا برای اینکه من دایی کنم برای تغییرات ذهن قیمه باشه میگه اگر عقد عقد معاوضه هم باشه لاکی شرط درش نباشه که معین باشه تعیین و تایید درش نباشه اینم توی شرط نمی دفت مثلا به بگید شرطش اینه که علم به اوزهی باشه چون شرطش اینه که باید اوزهی محدد باشن محدود باشن معیل باشن محدود باشن این توش قبل میاد. اما تو صلح سلح, سلح محاوضه است میکنه صلح مناش و تسامنه میگه آقا این مجموعه مساله نکنم میگه خروفتن مساله نکنم به سر ازازه اصلا مساله مناش و تسامنه حالا بعد که نگاه کردن این مجم اما ایشون صد ازارت رو مصالحه کرد میاه بنا قبل نمیان این نکتهی که ایشون در حاشیه اضافه کرده ولا سر بر فی اقود معاوضه الا پل اقود محددات بدل اما ال اقود احتمالیه فی امن طبیعتها تقضی به رقوع الغبل علا عهد عقود. اقودی که احتمالیست طبیعتش قابل قبول قبل داره مردان قابل داره لعله ها را تعاقدها اصلا گوی احتمال تعاقدشون عقدشون رو احتماله صلاح و اثر و القدر في شهه الان مثال نمیذنه ایشون میگم چرا مثال نظر در هاشیه مثال معروف فتوی فقای همین همینه الان اگر مصالحه انجام داد و بعدش خرم واقع شد، البته اختلافی در فتوا بعضی ها معتقه در, در قرد قرد در عهد سلط در مصالحه در عهد سلط هر درشی قرم واقعه بشه سلط درست بعضی ها مقاعدن که نه قرم در سلط طبیعت سلط مولا قرمه اصلا بخواد مسالحه کنید چون قبر نداره مصالحه معناش از اینه اصلا عهد مصالحه معاوضه هست همه معاوضه در حدود احتمال نه محدد یه سالح تو که علا حالا لذا یکی ادهیشون اینه. که اگر قبل خیلی فاهش بود اونجا قب... تأثیر بوده در به الا قابل عادی تأثیر در صلح نمیذاره یکی از فواله و اساسی بیگ با صلح و افراد رو به سلح برای همین چون میخواد معامله انجام بده که طرف هم به قبل نداشت باشی یا به قبل نداشت باشید مصالحه به کنیم یا مصالحه میکنید میکنی. این مصالحه کردن در مقابل بیگ این نکته است که اگر تفاوت پیدا شد حد نمون در اون نباشه خیلی تعدید دیباییس میگه اگر در عبود معاوضه هم شرط باشه محدودیت علم به طرف این و خصوصیاتشون و محدودیتشون اون توش قبل میاد اگر این نقطه شرط نباشه بازم توش قبل نمیاد. این سه مورد رو دو مورد رو ایشون خارج کرده یه مورد دیگر که خیلی محل ابتناس الان میشم محل ابتناس و پرجوه نشده، که از عبارت ایشان باید قید دیگه باید یک خواهد شده یکی چیدی که امودی که توش ز... ظاهراً شاید معاوضه باشه اما در واقع معاوضه نیست تو اونها هم قبل نیست تو اونها تو امودی که ظاهرش توش خیال مادم لاحالی سان پولی توش هست اما عنوان معاوضه نیست که حق معروبش نکاحه مثلا خانمی رعایت کرد که مثلا آنگفتم این تو خانمی ای شد، تو... یکم مثلا صد می‌بینم محن در جمع در از بعدش نه وقت بیگوته بوده، اشکالی بیش ازد، حالا خانمی شد نه تو خارج نه خودشم بیته، ما توضیح زیگ دید در باب علم در باب نکام نیست علم به ارزان در باب بیه در باب بیه که یعنی علم به ارزان، مراتب زم و اعداد و این که سکوت مثلا مخاز زعله رو بخیر بکشه در باب علم نکاح ندید که اون خانم بچشه ود مش مراد از علم ازدنکاه یعنی زن در خارج معین بشه مراد اینه این دو تا با هم تفاوت میکنن یعنی اگه مثلا یکی از دختران بحث در رو درآورید این معین نمیشه مراد اینه این خانم در پای ش میبینه میتونه عرب می نکاه ورده ولی اون اسمش نمیشه نه راست میشه نه هاشم مراد از علم در باب نکاح اگه بخوید که در اونجا هم علم شرکه مراد این نیست که اسمش بدونه عشیرشه بدونه دردنشه بدونه شکلشه بدونه نه <تصفيق> این نیست علم در این دو تا مقام با هم فرق میکنه یعنی در خارج تشریفش بده یه خانده شد اون سوران اما در خارج قابل تشریفه این عقدش درسته اما اگر در خارج قابل تشریفه نبود اصلا بگم یکی از دختران در این درسته؟ وقتی اهدم به خیار اون اوریدو اونجا گفته اوریدو میخوام این کارو بکنم یا حثی روی عنوان اهدم یا نمیشه کرد دقیقاً میفهمه؟ اون ایراد داره و حالا این بحث برداشت خدوم رئیس من دانشجوی عادی بوده خیلی خوب میوامو بی بچا صد میلیون مثلا ماشاءالله علی مهروم نیست اصلا خیال دارم دارم معامله رو برگزن سوال آیا خیاره تو اردنکاه هم میاد چون ظاهرش بود داره از هر برمان به شما در علمانی سونی ادهشون اردنکان رو محاوضه گرسن نقطه یه داره این مطلب که اردنکاه محاوضه است اولین بار در فقط شیعه در محصول شکل توسی آباده کنم از سونی ها گرسن زنی شکل ترجمه نفهم در یه اجتماعی بالا شده بعد ها علمانی ما مثل جواهر دیگران مفصلتن نکات ما او تن اوشه به موعوضه موعوضه نیست یه چیزی شه به موعوضه لكن اگر کنیم حمیش نه موعوضت نشه به موعوضه اصلا توش بحث عوض مطرح نیست چرا که ما اگر نکته اساسی در احود ال تا به ارضن الحود ایشون بحثای قاعده ای رو در باب احود ایشون حساب به اذهارات مفصل‌تر مطرح میشیم به الله تعالی مراد این است که هر عقدی دارای یک واقعیتی در وعال اعتبار خودش واقعیت اعتباری و یک اثر خاص خودش داره ما باید تعریف عقد بر حسب اون نکته که هست در باب نکام مبادله بین پول و چیزی نیست نه معاوضه از نشه به معاوضه عهد هم به خاطر آیه مبارکه به نمره از اون از نفس سوال نبی گفتن از این آیه معلوم میشه که اگر که به نباشه عقل. پس پولی که داده میشه این عقده این هلله گرفتن رهبت نفس‌ها او پس این معاوضه دقیقاً نکتهش اینه اصلا وقتی به نه قاعده عقلاسی در باب نکاح این است که مفاد نکاح غصب از نکاح پول نیست غصب از نکاح ایجاد قلبه زوجیت در وی اعتباره چون یک زوجیت ترکیبی داره با کل ممکن از زوجیت ترکیبی والله او و هر كل وجه زوجیت جنسی این ای زوجیت واقعی داریم یا حالا مثلا اعتباری مثل وجود مایه یک زوجیت اعتباری داریم که این زوجیت رو در اعتبار ایجاد میکنیم این زوجیت یعنی حلقه زوجیت که داره اثر خاصی در هر جامعه ای در هر فرهنگی این حلقه زوجیت رو ما با عقد نکاح ایجاد میکنیم نه اینکه در حلقه زوجیت معاوضه هست گفته میشه به خاطر این در مقابل راستن استبتار به زن گفته شده ولی زا هم در فتاوای اصحاب هم هست که اگر مهر زید نکن مهر مصممه محرول مست بعد از دخول برای او لازم میشه بعضی هم از احرستان هم قبل از دخول هم نیست حالا اون بحث دیگه است نه هر حال ما در باب نکاح این خوب نکته ای داره ایشون میگه باید تا اقود باشه. نکاه نه معاوضه نکار خارج نکنم اینه من اضافه می کنم پس ایشون یک عبود تبرر رو خارج کرد دو مثل صلح رو خارج کرد عبود معاوضه ای که باید محدود باشه طرف. اینا تو شهرم نمیشه سه اونی که ما عرض کردیم ظاهرش پول هست اما واقعا معاوضه نیست مثل نکاه عقدی در خانون یک من, من معنوم شد که من خیلی برای این ریاضه سرش کلا رفته حق خیار هست از ما توضیح رو از کردیم اصولاً عقد نکاح خودش خواهده خیار نیست مگر مواردی که شعر اجازه فرص داده خیار نیست این نوع فرصی در مواردی اجازه داشته علایه حالت این هم راجع بیدیم ثانی ایشون میگه یوقت در غرم وقت تمام هم در وقت هر تعادل نباشه اما وقتی که ما اقل انجام دادیم تعادل بود حالا این قیمت شرح بالا مثلا گفتید دو ماه دیگه به تحویل میدن سر دو ماه قیمت شرح بازا این قد ندارم دو تا به اصطلاح این دیگه من توضیح بله نمیخوام توضیح بدم چون این شویم بزا توضیح ده خودش بعد قوانین خودشم مورد کرد سه با من یس عباد احتراز منر قبل در معاملات ایشون میگه انصاف که ما در معاملات بگیم قبل نواشه میکنم خیلی مشکله چون اصولت در معاملات اینه که طرف به قیمت بالاتر برسوشه و اون طرف هم سعی میکنه به قیمت کمتری بخره. این اصلا متعاربه که معاملات یک نقطه جاری در معاملات ایشون میگه که یو قصد وقومه شریعت الاسلامیه القبل الاسیرم و فاهش این نصیل سمون اوه. که باید اونقدر می میگه اونجا به باشه بردنه باشی یعنید مناشون وارد یک بحث زمان ما اگر چند دقیقا وارد یک بحث لطیفه دیگر می میشه که خیلی این بحث لطیفه به درد ما نرماتیت بخوریم ایشون مثلا بعدیشون میگه الگبنو به اعتباری مسئله فن اجتماعیه این خواهد بگه مسئله قرد و این که آیا باطل میشه خیار داره خیار نداره این بر میگرده به یک فرهنگ اجتماعی ولی از مرغم مشکلتون اجتماعیه لن یه رجال و قانون اله حل ها حل مرزی میشه؟ نمیشه یک بخشیز که به طور باطلق بیه تو قانون حلشو کنی این مشکلیه چون یک پدیده اجتماعی کتابه تابقه فرهنگه. فرهنگ رو با تمندر اگر فرق بگیده مجموعه باوره های فکری حالا تمندر رو به مذاهر خارجی میگم استفره از اون ساختمان رو نمیدارم موشک و... رو اینجور چیزا فرهنگ رو به جهات فکری به اصطلاح خودشون میگه چون یکی پدیده پدیده اجتماعییست مشکلی است، این رو نمیتونیم قانون مشکل داره قانون به اعتبارات اقتصادیه و از این دیگه اخلاقی ثقافيه گفت بهتره برای یک اعتبارات اقتصادی و اخلاقی چه اخلاقی تند اخلاقی نه اخلاقی برای نوع اعتبارات اخلاقی در اختلاهای قانون اموری که از قانون خارجه اخلاقی جدا از اخلاقی اقتصادی مثلا الان ها پرشن نه خود کل ایران ما از این اعتقاداتی که در اقتصادهای غربی کار کردن مثلا میگن ما در اقتصاد چیزی دونام عدالت نباید بلکه عدالت باشیم اقتصاد دو بال نیست اقتصاد را آنما خودشو داره یه مسئله از هست مسئله تولید هست مسئله توضیع هست بحث ادالت رو نماره ما بحث اقتصاد مطرح بکنیم اقتصاد اصولاً به دنبال ادالت نیست این مطلب یه پرهنگ خودی این مطلب که اقتصاد به دنبال ادالت هست شو اقتصاد به دنبال ادالت نیست این که میگه اعتبارات اقتصادیه و اخلاقیه منظور از خلوهی، اخلاقی فرنگ اخلاقی یک نوع اخلاقه غیر ثابته وقتی این از چرا وارد میشه ایشون یک فتل مدنیه الی یا مدنیه الی که فیها مذهب فردیه اگر در یک جامعه ای باشه که اساس تل حادث باشه و افراد دنبال بال مسائل خودشون باشن و ما فقط سر به نگاه بکنیم اون حالت اجتماعی نگاه بکنید باید بگیم تو این جامعه قرم مشکلی درست نمی‌کنه چون هر فردی دنبال مسائل خودشه سعی میکنه جزء خودشه به ده برابر خودش بشه به هیچ ما تکلمون هر ده سطح مدنیتی اند یا بودنیتی یشود مذهب الفردیه و ما یتتبع ما یتبع او و ما یتبع اوهو، و ما یکوهو، و ما یتبع و ما یتبع منتحکم من سلطان اراده تو این مکتب که حساس حکومت و اساس و سیطره مال سلطان الاراضه اراده من حساب میشه دیگه اراضه جردی حساب نمیشه اراضه فردی سلطان الاراضه فرقود دنبال این من چی میخوام لا نبنر قانون لا یقی مدل قبل نبن دیگه قانون نمیاد دنبال قبل چرا؟ چون این میگه مهم که ما هر رو نگاه بکنیم و مصالح فرد رو نگاه بکنیم این آقا راهی پیزان میکنه که یه جنس هزار کنیم به پنجه هزار آزان و میگه مهم همینه هم ما قانون کارفاسی بکنیم ما همون اراده خرد رو می کنیم. از ال القانونه لا یقین مدل قد نغزن و یه با هن یه لحو جزاحت کیفه هم برای قد قرار نمیده فل متعاقدان و ما هر هرچی اراده بکنن وله همدو سراغ بین جانبه مثل یه مبارزه است این قرارزادشون مثل یه مبارزه است این دلش میخواد گرانتر بشه اون دلش میخواد اردانتر بکنوشه و چون حسال از اون فرده ما به دوباره اجتماع نگاه نمی کنیم میگیم هر کسی اراده خودش انجام بده یه هاول جانبه کل رو من همه یه هابل از یک حساب آخر. چه الا توافق الاراضتهم ال... على شيء واحد فهاده الاراده ایی که اگر خرجشون قبول کردن کتاب به 50 هزار صورت واقع شد خوب دقت کنید تمام شد دیگه آقا کتاب قیمتش هزار بود باشه ولیکن دو اراده قبول کردن که 50 هزار toman بدن مراتب واقع شد همین مقدار کافیه فاعل اراده بله و, و من کس رو بمیند فحلال رو به اگر کنی گیرش آمده نوشی جانه و من خسره فحول جانه کسی هم خسره از یکی همون تخصیل خواسته کی گفتیم بودی؟, بودی حالا که خاصی بود پای هر بیست یه داره ایشون میگه فلغم نو زکات رو هره این جامعه آزادی بیگه این قانون طبیعتن زکات آزادیه وقتی آزاد بود تصمیم گیری بکنه این مطلبیش ایست که ایشون میگه که اداته تنور از اما اگر جامعه بشری که شرط کرد از اون حالت اصاطل تر در و ضعف مذهب التر از اصاطل تر دریب شد در سلطان و مبدأ در سلطان اراده و مبدع سلطان اراده فلغان اگر گفتید فقط اراده که طرف این باید قبن بود اگر گفتید نه خیلی از قانون هم میاد قانون هم میاد میگه آقا شما تو تا هم باشه تو نیست تو خاصی، تو در خواست ازاقی پنجا ازاقید نیمیشه ما باید یه دخالت بکنیم فلقانون یه سه دخش لمن قبن فل دیگه قانون میاد دیگه جباید چه بگیرید پس این دقیقه چی شد؟ این میگه بر میگرده به ترهنگ جامعه اگر ما آمدیم تو جامعه اصالتالتر به جاهزی داختیم قائد هم نباید برای فرم کیفری برام بیدیم اما اگر براش شد که از اصالتالتر در در یه دست در, در, در, در, در, در, در بیاریم جامعه رو نزد بدیم قانون بدیم شکل بدیم نه اینکه هر هرچی فرد اراده کرد ارازه فردم محترم نه که هر که هرچی بیگو شما از آن که در آن که امروز کردیم که نمی‌چیک، از که متعادل دینی تصادم، قانون میگه شما مثل دو طرفی که هنوز کوچیک بودیم بحث کشی بعید تو نبودی، تزور بزرگی ما بالا و تزور این بالا باید بعید کوچیکی نظام اجتماعی است حتی لا و ضعیف و به قیم یعنی استثمار بکنه بره. بلگه که که در قانون یا لحمایت ضعیف به در قدی به امیازه اجزا هم علاقه هم این شو میگه در حقیقت اینی که در قوانین بشنی نیوامزن روی قرن حساب خوبی درست بکنن این در حقیقت نقطیش جایی میگه لیه این نکش مال قانون نیست مالا اقتصادی نیست نکتش نقطه نکته نقطه فرهنگیه نکتهی که به تصدورات انسان از جامعه و انسان برمی کرده این خلاصی نظر ببینی که عجیبه دقیقا این حضم برای هزام ساده قبل ابن حضم داره لگه این چون ابن حضم ظاهریه اینو ببینی رو ببینی رو آقلایی برده چون ابن حضم ظاهری به نصول تمسک میکنه تمسک و اون تجاراتا انتران ببینی نمیبرد این مبدع سلطان اقرابیت از پیش بوده اون تمثل که بایی مبارکه میگه اگه تجاراتی انتراز رو و خیلی ترازی پیدا شد این کتاب رو فرقی از دوتان خیلی دیگه حتی فرق مرد یه تحصیل من این مقصد میخونم بعد کتابا با دنیا اسلام. پس سرقش این شد که در اینها ها در مبانی و قابلاتی حساب کردن اون آیه مبارکه رو ایشون اوغلایی یه مذهب چه جور انطرازه؟ به اوغلایی آمد تمسکه به اطلاق لحظی توسل کرد. اون گفت من نظری که در مسئله شیراز انطرازه، دیگه کاربرد تاثیر نداره. اما ما تحلیل اوغلاییش هم خود نیم. این تحلیل که کاربرد تاثیر نداره. اگر شما محضر اساسی تر داده بگیری و بگید مهم فرض، با حیات اجتماعی مهمی است. توی دیدی شما عرض کرده. یکی خرج یکی هیئت است. اما به هیئت اجتماعی یک آقای کتاب 1000 تا 5000 تا نوشته بعد برای اجتماعش چه این مثلا میگه آقا من کار به هیئت اجتماعی ندارم این هر سود برده من فرد فرد حساب میکنم هیئت اجتماعی امر رحمیه چیزی به امام و هیئت اجتماعی نداریم اینی که کتاب خیلی دقت بکن چون مشخصات خودش خود منه خیلی چون مرون غیروانی کلمات خود نیست من خودم برای توبش یه توضیح که ایشاش اینجاست ان روشن میشه. میگه ما خرید هیئت اجتماعی نداریم ما این آقا رو نگار می‌کنیم آقا رو نگار این آقا راضی بود این آقا راضی بود این آقا خروج به هر جای اجازه داشت شنید توی هیئت شما این تو اجتماعی زشته توی هیئت شما کتابش 10000 تومان است 45000 تومان میگه ما چیزی به نامه هیئت اجتماعی اصولا نداریم اون یه گره رحمیه ما اون چیزی که داریم افراد این، این،, این این هر کلوخرازی به خودش انجام کافیه در بعدشو میگه این نکته‌ای که گفتیم ها در خلاف فقهی قبل نه راه متحدقا به تشکات زمان میگه ممکن قوانین اولیه‌ی بشر تربی بوده لذا برای قرن ارزش قائل اما بشر هرچی در زمان جلو میره این صحنه اجتماعی جوری میشه که قانون باید بیشتر دخالت بکنه فی تطابق و قوانین و اصول اصول متوالیه میگه به مکان ها تره میکنه یعنی زمان و مکان در این مطلب هم تن. در ایشون میگه که کان رومان روم باستان متشبه به روح تردیه روم باستان خیلی رو از آزل هست اعتقاد داشته تشعب این سیاف برسلا پر از روح تردیه در قانون روم باستان و اداتان مذهب سلطان اراده لم در قانون رومانی بر اگرمان اینقدر مذهب حرگرایی رو در قانون رومانی لن اساسی از ساله یصولو نیست بر قانون روم, روم قد باستانی الا انال قیود علاها بالمذهب اگر قیلی هست در قانون رومی هست لن تکن به حمایت زعیبون قدید خیال نکنیم بحث اجتماعی و حمایت زعیب بلو وجود اعتبارات تنمیه خاصه با حاضر قانون اگر در اجام قیود زده نه برای حالت اجتماعی است و اگر روح قانون رومان برو مباستار روح ترذی، و تشابه قانون رومانی به روح ترذیه و تشابه روح و تشابه قانون رومانی به روح ترذیه جعله‌هوا لا یابه بلغار محل یابه این در قانون روم باستان به کاری که فریاد میشه اثر نمیکنه. فقط لما خانیه تقدام به لحمایت حمایته مقبول بعد در حاشیه استسای متعرض خوب دقت بکنید این احتمال آیا واقعا وجود داره که ابوالسال ابن حزم در اندولس بوده اندولس همشون جزء اروپا سگه و اندلس خوب میدونید به رسال درای منشرانه است روم که در منشرانه است آیا احتمال داره که این به اصطلاح عین اسلامی درون تعریف به مهاربه در واقعیت داره حالت مهاربه حالت مهاربه مقاربه مراد همون مولانا اندلوسی خب واقعا مردمان فوق العاده مثلا علمای اندولوسی که من توش شیعه رو ندیدم از نو سه ابن عربی بگیریم خود همین ابن حزم بگیرید خیلی شخص ابن خلدون بگیرید خیلی شخصیت های بزرگ عجیبی داره مقاربه به یا اندلوسی ها این آیا واقعا ممکنه که همین قانون روم باستان به که برای در ارزشی قائل نبود این مثلا در ذهنیت اونها موجود بود که ایشون این تمسک باید بکنه تجارت انتراز بعد ایشون میگه ولما ما دین و مسیحی پی اوروب او پی اوروب پی اوروب با در گرون وستا که دین آمد می... یعنی ایشون میخواهی تفاید توضیح نمیده ایشون میگه اتنک اصلا رو دهو هم احکام اساسیم که اگر نشینی کرد، به اگر برگشته که آخراللعه، انتخابش این در هیچ اینطوریه. یعنی دین که توی جامعه آفتاب، تغییر من, من بهتری باشه دین که آمد سر کرده ادالت رو توی اقتصاد بیاره. یه جوری. حالا ایشون رو این اکتساب رو هم تغییره. اساسی که در اروپایی که دوباره این بود که را ارزش خواهد نشد چرا ارزش خال نبود چون اساس فرق دارد بود این تغییرشونه تو اساس که کودک هدی کرد تحلیل که در زگشت میخوره تحلیل میخوره تو اساس و هر تا تو یه مکان های اساسی تحلیل نمیتونه کاری بکنه ایشون میگه اول ماسا در دینوس مسیحی که کردن پیروپا ترک کردن رو و از سر خدابقایی از تکه سادوی و معا صحبتصبح کامل اراده با این که در تمام پای مستند با هم اراده تأثیر گذار بود، یعنی به اصطلاح ما ترازید اصطلاح اراده یا اصطلاح دیگر فارسی ما آزادی با اینکه عکس کنم با آزادی روی ایبرالیس در اینجا حاک شد در اقتصاده شد، الاحند رجارالل کمیسه قید دوها در مده بر اراه کلیسا آمد این مده آزادی رو روی ایبرالییس اقتصادی رو، تغییر زده ادالت و به حمایت از ضعیف من استقلال حق استقلال رز ضعیف رو در موابل ده کشی به استثمار غنی قرار داد و توسعه اونش نظریه رز که ایشون از این برنامه رفت از وقتی تو صحنه اقتصاد آمد سر کرد عدالت رو بیاره و این که آلمان دنیای نرگز هیچ اردش تریویان مدال اقتصاد خویی به ادارت نداریم. این درکه از نظری که دین باز از جامعه جداس بود؟ باز هرچی دنیای آمریکا و اروپا دنیای نر از عرضش های دینی فاصله یه رفتار ما توی اقتصاد کاری به ادارت نداریم. کس نکته که به تحلیل کشندیه نکته این شد که در جایی که مذهب خردی بود، اونجا کامی بی اثر بود. که دنبال این حرف نبودن دین بود که آمد ارزش عدالت تو اقتصاد اقتصاد زندگیشن ارزش عدالت که تو اقتصاد زندگی کرد اما وقتی یک خطی بذاریم دو جنس رو با هم مقایسه بکنید یک تیم حساب شنو اقتصادیون نمی‌گویند نور عدالت رو دین بود در واقع به خاطر تفکر دینی بود که ادالتی معنا تو اقتصاد راه پیدا کرد در حقیقت من من سر بله و به حمالت زعیم وقتی این لطیفی قشنگی هم داره از این که خوبه و توسعه او فی نظریت رو برمون تحنیز قشنگی شد میگه بعد دیگه این مسئله که پیش آمد ادالت از مرحله قبل هم رک شدن مثلا چون علمای ما این تا رو به هم رفت ندادن ایشون با روح قانونی رفت میده دو تا بخلی رویست که شما میشهد تالا میگه و توسعه او مثلا توسعه دادن. نه فقط قبل تو معامله خیلی لکیم نوشته و توسط اوی نظریت قبل و قلبوها الا و قلبوها اصلا آمدن بحث ادالت رو و بحث این تاضول رو در وجوه مختلف نگاه که یکیش قبله یکیش قبله سهرم و با خیلی کیفه این میگه ربا ریششت با قبلی چیه؟ این بین آمد که بار رو در طرح حرام کرد گفت شما صد تو من تومن سطگه چرا تاسان هم گیریم؟ ببین به 10 شما طرف و زدید گرفتی در جور گرفتی مجبور شده به خاطر زخم خودش بیاد صبر بکنه نیروی خودش شما خودش رو بذاه 20 سال بعدی هم اونتحخیل داره فران داه. چ تومن په تتون زیادی بده در مقابل اون ثمان که گرفته. خیلی من این سال معیهدارره سافن. این وقتی نکه میشه که اگر اصلا ابن حضم تعمل که ربا با غرم یک ریشه پیدا میکنن دیگه برای شبهه نبود ربا که شما باطله غرم که شما خیار میردن فهرمان ربا فی عبود الغرم و حددو لسلع اثمانها آمدن گفتم در باب بی چیزی که میفروشی باید تمامش محیر باشه این بابه و للعمل بود. اگر کسی و اجیر دیرفی یه روز کار بکنه باید اجرتش یه اگر مشخص باشه. امروز کار کنه شرکت می‌گیریم. و للعمل بود. این رو همه میاد مسادق عدالت در مقابل اساس فر این و نظام در روایت داره که شما اجیر نگیرید آخر وقت پول بشید. این بمون اساس الفت. تو روایت‌ها از همون اول باش بدیم که ما کجا بتویم. تحلیل اینه که ما همه در مقابل اساس الفت. اجره سلا ولا ولا و نلعمل اجرشو. فلا یک بنالباي، فلا الْمُشْتَرِي بنالمشتری، فلا یک بنالآمرالعجیب. و هادا مکان یوسمنه او به زمان الاعدل. که من بردم انگلیسیه بردن آویش. و به یعنی ادالت رو تو اقتصادی وارد کردند. او پس باید سمن عمر باشه قدرت عمر باشه دقیقی این صاحب هم تعلق شنگیه اشون بخواد بگه اون حرمت ربار با چیز محامت قبل یکیه این مال آمدن ادالت در اقتصاده و این از برکات دینه و الله اگر مكتب فر و اساطم فرد باشه طبیعتش نیکی چیزی نیست از یا جوز و اتراخان یادتا امومانان امومانان و الله خانه